ارادت بیچون یکی را از تخت شاهی فرو دارد و دیگری را در شکم ماهی نکووب دارد. وقتی است خوش آن را که بود ذکر تو مونس و خود بابدا در شکم حود چو یوننس.